قابلی توجه کلیه مقامات لشگری و کشوری شرکت خدمات ضد امنیتی آپاچی های ولاگت با بیش از سی و هفت سال سابقه درخشان در حمله گازنبوری به کنسولگری ها و تسخیر سفارتخانه ها در خدمت شماست حمله به سفارتخانه های خابجی به شکل خودجوش و کاملا خودسر. دارابگ پرسونل ورزیده با قابلیت بالا رفتن از دیوار چهار متری و عبور از موانع امنیتی سازماندهی و اعظام گروه ضربت در کمتر از ده دقیقه به سفارتخانه خامی دلخواه تیم تیمهای مجرب برای سطوح مختلف عملیاتی از شعار دادن و دیوار نویسی تا آتش زدن و نیز تسخیر کامل سفارت و گروگانگیری بر اساس نیاز شما داراب رزومه درخشان و منحصر به فرد در جهان با تسخیر موفقیت آمیز سه صفابت امریکا، و اینک سفارت عربستان با آفاچی ولایت به جای احزار سفیر و کاردار و واکنش های دیپلماتیک با دشمنام خود انقلابی برخورد کرده و اقتدار نظام اسلامی را به جهانیان نشان دهید. شرکت خدمات ضد امنیتی آفاچی ها و